ببخشید آقا قیمت این پالتو چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ بله قیمت آن دویست هزار تومان است گران است این پالتو از چرم طبیعی است؟ بله تمام پالتوها و کیف و کفشهای این فروشگاه از چرم طبیعی هستند؟ حتی دسکش ها این چرم ها محصول کجا هستند؟ مشهد؟ البته چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند؟ چرم ایران خیلی خوب است. ببخشید قیمت این کیف چقدر هست؟ پنجاه هزار تومان بسیار قشنگ است اما برای من گران است کیف و کفش های دیگری هم داریم بفرماید این طرف سمت چپ این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند اینها را می خواهم بله حتما رنگ مشکی میخواهید خواهید یا ای؟ رنگ قهوه‌ای خوب است. متشکرم.